بخش دهم ده به محل که رسیدیم حسن راهش را کشید و رفت شاید قبلش گفته باشد ممنون که اومدید اما به شما مینا می دهم که من حرف اضافه تری بهش نزدم زنگ خانه را زدم باز کردم همیشه همینطور است چون آیفون خراب است اول در را باز می بعد از بالا داد می ببینند ببینن که کی هست کی نیست آقا جون از پیچ پله داد کشید کیه؟ کیه؟ عباس؟ عباس توی آقا نمیدانم چرا بیخودی احساس کردم قصد دهواز توی کلش نیست جواب دادم سلام آج آقا بله منم دارم یا بالا نامردی نکرد حوار زد که سلام و ورم میخوام نیای ست سال سیا تون بتونی هیچ معلوم از از سر صبح کجایی کپک اغیش چک یک کلمه عزت و احترام تو دهنش نبود خودش هم خوب میدانست که قضیه مربوط به از به این طرف بود با این حال پای صبح رو وسط میکشید. تا این موقع تو گوچه ها پلاسیکه چه غلطی بکنی؟ یه مدت جلود ور شده خوب آسی سر خود شدی جونم مرگ شده. همین تو کوچه بودم آج آقا جان جای نبودم به جدت. تو کوچه بودی؟ جدم کمرت بزنه. حالا مگه نیایی بالا یه پس گردنی بیشه من داری. خودش با زبان بی زبانی گوشی رو دستم داد که سنبه پرزور است و بنابراین وضعیت خانه چندان امن نیست. ای که داشتم این بود که از دری که از خانه به مغازه راه پیدا می کند، به مغازه راه پیدا کنم. شاید ندانید اما این در در خیلی مهم نیست. غیر از فرار و اینجور چیزا کلی کاربردهای مهم دیگر هم دارد. تمام غذاهایی که مامان و شاباجی برای مغازه میپزند پزند، نهار و شام آقا جون و چیزهای دیگر را از همان در می و میآوریم تا صد بار هم از اماکن آمدند، کلید کردند که الا و بلا باید این در تخته شود. با رفت آمد معمولی مشکلی ندارند، فقط بیشتر از این می‌ترسان که یک بغی شیطان توی جلد آقا جون برود و از آن در استفاده های ناموسی بکنند. بعد از هرباری هم که آمدهاند با گچ پیش ساخته بستیمش، ولی پاشبندش دوباره همان آش و همان کاسه. اگر واقعا دوست دارند که این در بسته شود، ما به دلایل محکم‌تری نیاز داریم. سلام دایی. سلام دایی جان. از کجایی از صبح اینم میگفت از صبح غلط نکنم آقا جون خش را شسته‌ شده بود هیچ جا بعد از اون رفتیم با حسن یه چرخی زدیم اومدیم خونه نگران شده بودن همیشه یه خبر بده دایی جون چه خبری بدم همونجا رو چشمشون نباشم بهتره میرم خونه میندازنم بیرون میرم بیرون دادا هوار که کجا بودی چیکار می‌کردی تکیفشون با خودشون معلوم نیست که چون داشتم حرف حساب میزدم هم دایی هم حرف بالای حرفم نیاورد خیلی حالش رو هم نداشتم از ترسم تا آخر شب در مغازه نشستم اما حواسم همش بی لاله بود بیافش درست یادم نمانده بود اما آن مانتو قرمز و آن نفسی که زیر گوشم کشید از ماخم بیرون نمیرفت دوست داشتم پیش خودم اسمش رو افسانه بگذارم سر و ریختش جوری بود که معمولا ها یا ژیلاها آنجوری هستند یعنی که من به عمرم لاله آن شکلی ندیده بودم. عجب حالی داشتم پسر. غلط نکنم خودم را باخته بودم. بدبختی طبیعتم هم همجوریه که جلوی جنس مخالف فاری وا می دهم. نه من. مردم بیشتری با جنس مخالف موافق‌ترن تا جنس موافق. می‌خوام بگویم در این مورد خاص از یک کاملاً برعکس است. نباید گول کلمه مخالف را بخورید. به همین دلیل و دلایلی که مجاز نیستم بگویم عاشق دخترها هستم. منظورم چشپ چرانی و مترلک انداختن و خاک تو سری کردن نیست. دارم در مورد عاشقیات های خیلی جدی صحبت میکنم کنم که گاهی کار آدم رو به ازدواج می کشاند. البته حالا حالا برای این کارها سقر سنی دارم. ولی اگر تا حالا دست روی دست گذاشته به این چیزها مربوط نیست. اصل قضیه پول است. پول که نباشد یعنی کشک. این چیزی است که من توش تجربه دارم. اگر به جرمم اضافه نمی شود بهتا میگویم که یک بار با یک دختر وقت برگشتهی نشستم به کباب خوردن. من عمران از پس خریدن دو پرس کباب با دوغ و ماس بر آن هم چه؟ یکیش با برنج. همان سر غذا از غلطی که کرده بودم تو کار شدم. قیافم خود به خود جوری شد که او هم یک چیزهای دستگیرش شد. گفت چیزی شده عباس جان؟ ای چی تو بخور؟ خیالش راحت شد تا آمد یک لغمه دیگر بگیرد. دو مرتبه غیافه رو را کج و کله کردم. تفلکی تاقت نیاورد. دوباره گفت تو یه چیزت هست ها؟ نه چیزی نیست. چرا حالت بده؟ با همان صورت درهم کشیده گفتم امان از این گرونی. این حرف بود که من زدم؟ نه این حرف بود که من زدم؟ تفلکی زهره مارش شد. قش بود به جای جلو کباب از همان اول با یک مسقطتی فالوده ای چیزی سروتهای قضیه رو هم میآوردم. دختر غذاش رانیمه ول کرد و پول غذا رو روی میز گذاشت و رفت. به پول آن موقع 700 تومان هم اضافه تر داد. بعد از آن روز هم هرچه بهش تلفن کردم؟ یا اصلا جواب نمیداد یا داداش کوچیکش من رو دست به سر میکرد. قصد داشتم اگر دیدمش دانگ خودم رو بهش بدهم و یک جوری بهشحاللی کنم که انسانیت شیر خام خورده است. اما باید بدون مننت همدیگر را ببخشیم. حداقل باید می آمد و 700 تومن اش رو پس می گرفت. اما پشت گوشم را دیدم، او را هم دیدم. رفت، رفت. حالا گاهی هم پیش آمده که دخترها برای پسرها خرج کنند، اما مگر آنها کی هستند؟ آنها هم یکی مثل پسرها. مسئله این است که دست همه توی جیب باباهاشان است و مشکل از آنجا شروع می شود که باباها روز به روز دارن فقیرتر شوند. این وسط کسانی مثل من هم که پدر درست حسابی بالای کلهشان نیست و وششان به مراتب گندتر است. آنشب خیلی فکر داشتم که باید به نوبت میکردم. اگر مطمئن بودم آقا جون بیخیال و پس گردنی شده است که غلش رو به هم داده بود ترجیح میدادم بقیه فکرهام را زیر لحاف خودم بکنم. نصف بیشتر فکر که تا حالا آن زیر کردهام جواب داده است. اما خب روی کار آقاجون نمیشه حساب کرد. می میزنم میزد. شانس می تا آخر شب حواسش جای دیگری پرد باشد یا سرش به اخبار تلویزیون به هم باشد که من حب به جیم رو بخورم و بروم ستابه پایم به لحاوه تشک خودم باز می شود. دیگر تقریبا خیالم راحت بود اخلاقهاش توی مشتم است کمتر پیش میاد که از خواب بیدارم کند و پس گردنی را رسار کند آن شب چی شد یادم نیست ولی خوب یادم هست که از کتک جستم